بسم الله الرحمن الرحیم فیلاء التعجب فیلاء در اس بوده فیلان مسنا بوده چون دو تا فیلان مال تعجب ولی چون مضاف هست نون چه شده است منظور از فیلاء تعجب یعنی دو فیل تعجب الامثله ما عدل القاضیه ما اعدل القاضیه همینجا این یک نمونه رو براتون ترکیب کنم تا دیگه پرسیده نشود ما عدل القاضیه ما چه هست ماه محصوله آره نقشش مبتدا هست پس این ما چه هست مبتدا هست اعدله چه هست خفل ماضیه دیگه زمیر هو هم چه هست فائل هست که به بابر میگردد بله القاضیه چه هست؟ بله بینید که جان؟ نه بله و جمله عدل القاضی جمله میشه چی؟ جمله نه میشه خبر ما دیگه مبتدا که داشتیم خبر هم پیدا کنیم دیگه منظورم از نمونه اش نبوده لازم ما داریم ترکیب شو میکنیم بله خب پس این به همین است ما انقل ما اه یعنی آب چقدر پاک هست زلال هست ما اشده ازدهامل ململها ما اص امسنه گروه یکم بودیم به دو گونه تعجب درست می شود یا ما عدله ما افعله یا بهی مانند عدلبیهی مانند چی؟ هر دوتا شون در قرآن وارد شدند فما اسبرهم علی نار این سیغه تعجب هست بر وزن ما افعلا اسمع بهم و ابسر این هم بر وزن کیشون است هست؟ میشون هست آره اونی که گفتیم فما اسبرهم پس اون تفضیل نیست استاد از عزیز و بزرگوار فما اسبرهم بله تعجب کردی از این حرف؟ بله ما انقلماء انقیبیهی شبه اوقعی او که میخواید تعجبتون را چیزی بیان بدارید با هر دو سیغه میتوانید البته اگر اون شرایطی رو داشته باشد ما همیشه نمیتوانیم بروزن ما افعلا و افعلبیهی همیشه نمیتوانیم سیغه تعجب رو درست کنیم متوجه هستید؟ ها؟ شرایط میان تو قواعد انشاءالله میخونی به خاطر این سه نمونه از امسله رو آورده است چند نمونه از امسله رو آورده است؟ خب پس سه نمونه از امسله رو آورده است گروه دوم ما اشده اینجا دیگه ما رو روی فعل آورد فعلی که بروزن افعیل باشد یا افعاله بلکه اشده رو آورد که در قوائد نار توضیح میده فیلن من میخوان ذهنتون رو بیارن که ما بله ما اشده ازدحام نه مغزی و معموطی نداریم با سلاسیو و مزید داریم دیگه روی مزیدها آره مزیدها رو به این گونه درست میکنن ما اشده ازدحام الملها اشده بزدحامه ما اصعب کون الدوائی مرن اصعب بکونه مرن اینجا فعل ما چه هست تام نیست ببینید اگر سلاسی نبود مانند ازدهام اگر تام نبود مانند کن به این گونه درست میشه یا ما اشد خدرت زرعی یا اینکه وصفش بر وزن افعل اگر, اگر بود اون موقع باز هم نمیتوانیم بر وزن ما افعل و افعل بهی درستش کنیم ببینید مثلا در خدره چرا نگفته ما اخدره از ذره چون نمیشه از خبره درست سلاسی مستقیمن مباشره تن اسم تعجب سیغه تعجب درست کرد چرا چون فعل سلاسی که وصفش بر وزن افعال هست نمیشه مباشرتا از اون چی درست کرد سیغه تعجب درست کرد یا در گروه سیفون برویم ما اقبح ایو آقبل بری او چقدر زشت هست که انسان بری اقوبت داده شود. ما اقبح ایو آقبل بری او فهمیدید اینو خب به به ایو آقب زمانی که دقت بفرمایید نتوانیم مباشره تن سیغه تعجر رو درست کنیم یا مصدر میآید اول کلمه اشده رو می آوریم یا افعال دیگه ای که بعدن می گوید و بعدش یا مصدر می آوریم مصدر سریح یا مصدر معول مصدر معول آره ان که رویه لیمزاره اونو تبدیل به چی می کند تبدیل به مصدر می گرداند ولی این مصدر لفظی نیست لفظش که مصدر فس ما أقبح أيها قبل البريء أقبح بأيها قب ما أبر الله يصدق صانعو أضرر بألا يصدق كدوم تركبش مثل قبلية ما أقبح أيها البريء بري تركيب كنم ما مبتدا هست أقبح فعل ماضي مبد برفات هو زمير مستتر أيها آن انه ناسبه مصدریه است، یعاقبه فعل مزاره مجرور هست که منصور هست ان با یعاقبه مصدر معول هستند که مفعول بهی واقع شدند البری او فاعل یعاقبه چی؟ نائبه فاعل یعاقبه هست فهمیدی؟ به همین سادگی ترکیب چیز سختی نیست آره مثل همون اصمع اسب... اسب... بهی هست ببین در اسمع بهی لفظان بهی جار و مجرور هست لفظان چه ولی محلان فائله چی میشه؟ اسمع میشه که شبیه چی شده است ماضی هست که شبیه امر هست اقبح به ایو آقاب خوب اقبح به ایو آقاب دقیق مثل همون هست این با لفزن حرف جر هست ایو که مصدر مصدر معول هست دیگه اسم هست خب به ایو آقب میشه جار و مجرور میشه چی؟ جار و مجرور توم ولی محلن میشه فائل چی؟ اقبه لفزن مجرور اما محلن مرفو دست شیرین نیست؟ که مثال... ببینید ما یه اعرابی گاه موقعی کلمه لفزن داره یکی محلن لفظش میبینید که مجروره روش حرف جر رو اومده خب موقعی که حرف, رو جر... حرف جر روش اومده بشت میگیم پس چی چی میگیم آقای مولا سوهل نظری بفرما زود. آره میگیم لفزن مجروره ولی فائله چه هست ها؟ مثلا توی این جمله دقت بفرمایید ما زربه منظاربین فائل زربه چه هست فائل زربه چه هست نظر میدید منظاربین من من هست ولی لفظا چه هست منظاربین پس فهمیدید مولا سهل یعنی چقدر زشت هست که اقوبت داده شود اقوبت دادنش چقدر زشت هست فائل تعجوبیه هست همینو دارن میگن در ترجمه این با اون فرقی ندارن فقط در صیغه فرق دارن هر دوتا تا صیغه هر دو تا سیغه چند فما اصبرهم على النار خدا داره میگه اینا چقدر صبر دارن در آتش من چرا میگم انسان باید ادبیات عربش قوی باشه تا در ترجمه قوی بشه خب بریم جلوتر حس بزرگواران القواعد قاعده 22 للتعجب صيغتان برای تعجب درست کردن تعجب, تعجب چند تا صيغه داره دو تا وزن دار داره دو تا صيغه داره هوا آن دو تا ما افعله و افعل به بر این دو وزنند مانند ما, ما اعدل اعدل به ما انقا انقي ما اصبره اصبر به فهمیدید خب ولی شرائط الان در شماره بعدی بیاموزیم چلو سفوام یشترطو فی الفعل لذی تعجب منه مباشرتن شرط هست در فیلی که سیغی تعجب مباشرتن ازو درست میشاد ان یکون ثلاثیا چه باشد اون فیل؟ منظورت ثلاثی یعنی حرفی باشد یعنی این که حرف مزیدی درون نباشد مثلا اکرامه دیگه ثلاثی اللحازه سلاسی مزید هست ولی ستا حرف دیگه نداره مباشرطن یعنی اینکه که مستقیم از خودش سیغی تعجب رو درست کنی مثل ما نه که ما اشد ازدخامه اینجا دیگه نگفتی ما ازدخامه مباشرطن درست نکردی اشد رو آوردی بله یعنی منظور این که سه حرفی باشد مازی رو حرفاش حساب کنی چند تا باشند بله پس ان ثلاثی هن یعنی چند تا حرف داشته باشد؟ سه تا بیشتر از سه حرف داشت؟ دیگه بله دو تام تام باشه ناقص نا باشه مثل کانه افعال ناقص رو دیگه بلا دید پس تام باشد در مثال مثل سال اول و دو دوم که تمام شرایط رو دارن اما در گروه دوم ما اشد ده ازدهام الملها ازدهام چرا مباشرتا تعجب درست نکرده بود, بود. چون سه حرفی نبود در ما اصعب کون دوائی مرن اینجا چرا مباشرتا درست نکرده بود چون کان تام نیست مثبتا مثبت باشه چی باشه بله مبنیان للمعلوم مبنیان للمعلوم این فعل معلوم باشه مجبول نباشد متصرفن فعل تی باشد آره فعل متصرف باشه متصرف زدش جامد هست یعنی جامد نباشه مثل لیسه و عصا نباشد مثل ليس و عصا اینا مزاره امر ندارد شما مثلا میتونی بگویی که مزاره لیسه چی هست؟ نیست عرب برش مزاری بکار نباردن شاید طلبهی مبتکر باشد بگوید يد... یلیسو هست ولی نیست ولی نیست خوب پس منظور از متصرف باشد رو فهمیدید <coughs> لیس الوصف منهو علا افعال وصفی که از اون درست میشد بر وزن افعال نباشد بر وزن افعال مثلا وصف خدره چه هست اخبار هست اسود ها؟ موقعی که وصف صفتش ببینید مثلا زربه وصفش بر وزن ازرب نیست ازرب چیه چه هست تفصیل هست ولی اخضر نه اخذر یک صفته فهمیدید؟ اخذر و خب پس وصفش بر وزن چی نباشد؟ افعال نباشد قابلا للتفاوت آخرین شرطی که بتوان از مازی سلاسی تیغه تعجب رو مباشرتا درست کردین است که قابل تفاوت باشد حالا مانند چی؟ شما ببینید عدل که در مثال اول آورده ما عدل القاضیه این متفاوت هست در افراد عدل تمام افراد با هم مساوی نیست ولی موت همه دیگه ممیرد موت در همه افراد چاست هست هست از بین رفتن در همه افراد چاست پس قابلا للتفاوت معنیش همین هست قابلا خب این قائده شماری 43 کتابتون بود اما قائده 44 اذا کان ال قابلا للتفاوت یعنی متفاوت باشد برای افراد متفاوت باشد مثل, مثل... عدل مثل برای مثل نقیبودن آب تمام آب ها با هم یکی هند بریم جلوتر یا مثل صبر. از این نه نه مثبت که مثبت که دیگه آره چلو چارم اذا کان باشه اذا کان الفعل غیر ثلاثی میفهمی مثبت و منفی رو تو بلد نیستی؟ خب این ما, ما نافیه نیست که اینجا اومده اگر ما نافیه میبود اون موقع بش نمیگفتن مبتدا متوجه میشی ولی اگه تو بیا همینو منفی کنی دیگه نمیشه درستش کن چلو چار اذاکان الفعل و غیر ثلاثی زمانی که فعل چه باشد غیر ثلاثی باشد زمانی که فعل چه باشد غیر ثلاثی باشد منظور مثل ازدحام که بر وزن چیست؟ ازدحبه ازدهام. بابا ازدحام ازدحبه یزدحیمو بر وزن افتعال هست این یقایده نحوی هست هرگاه حرف فاول فل حرفی مثل زا باشد های باب افتعال تبدیل به دال می شود. این پنج تا قاعده صرف اینا رو حفظ کنید همه جا کاربرد داره. خب بریم جلوتر خودش میاره تو این کتاب. خوندید که چه بهتر من تا قاعده 25م که دیگه استاد نبودم. اگر خوندید الله. پس ازدهام ثلاثی نیست. در شماره می میفرماید زمانی که فعل غیر ثلاثی باشد، یعنی بیشتر از سه تا حرف داشته باشد. او ناقصن یا ناقص باشد مثل کانه که در مثال ما اصعب کونه دوائی خوندیم او کان الوصف و الا علا افعل یا وصف اون بر وزن افعل باشد مانند ما اشد در خدرت زرع میگه تعجب این موقع از چطوری درستش میکنیم در بقیه که بر وزن ما افعله و افعل بهی درست میکردیم خب زمانی که این شرایط رو نداشته باشد یا زمانی که فیل غیر سلاسی باشد ناقص باشد وصفش بر وزن افعال باشد اینجا چطور درستش میکنیم میگه توسلنا ایلت تعجب من به ما اشده او اشدد و نحوه ما میگه تعجبو درست میکنیم با آوردن اشده یا اشدد اشده یا چی؟ ماننده اش ما اشده ازدحام الملها اشدد به ازدحامه ما اصعبه کونه دوایی مرن اسب بکونی مرن یا اشدد رو می آوریم یا کلماتی رو که شبیه اشده حسن که شبیه جاهصا مثل عقبها مثل ابراح مثل اصابه و اتینا بعد از ذلك بمصدره صریحا او معولا خوب بعد از این که ما اشدد رو آوردیم یا اشباحش رو دیگه بعدن فعل رو به شکل ماضی نمی آوریم دیگه نمیگیم ما اشده ازدحمه مثل ما اعدله دیگه مصدرش رو می آوریم دیگه چیش رو می آوریم بله مصدر همون فعلی رو که میخواب ازش تعجب درست کنیم مانند ما اشده ازدحمه اگر از فعل ناقص درست کنیم میگیم ما اصعبه کونه مصدرشو می آوریم یا مصدر, مصدر مؤولشو که قبل از فیلموزار چی می آوریم؟ ان فهمیدید؟ وعتینا بعد ذالک به مصدرهی میفرماد بعد از اون چی رو می آوریم؟ مصدرشو می آوریم صریحاً چه مصدر سریح باشد مانند ازدهام کن خدره چه مصدر معول باشد مانند ايو عقب الله یصدق. فهميديد سروران مثلا در قرآن مصدره معول داریم. انت صوموا خير لكم ها یعنی روز گرفتن بهتر است برای شما ترجمه دقیقش که میخوای انت صوموا رو مصدر حساب کنی روز گرفتن برای شما چه بهتر است خب که مصدر معول میتونه مبتدا باشه خبر باشه مفعول بیهی باشه بسگی به نقشش دارد اسم، مثل مصدرهای دیگه مثل مصدرهای سریح برویم شماره چل و پنجام از این درس رو بخونیم اذا کان الفعل و مبنی للمجهول اگر فعل مجهول بود سروران اگر فعل چی بود؟ مجهول بود او منفی یا, یا فعل منفی بود دقت دارید یا نه اگر فعل چی بود؟ منفی بود یا مجهول بود؟ توسل الى, الى التعجب منه، به ما اشدد او اشدد میگه تعجبش درست میشود به وسیله ما اشدد یا اشدد بهی یا نحبشان مطلوعا به مصدرهی مؤولا ولی بعدش دیگه چی می آید؟ بعدش دیگه مصدر ما اول میاد مصدر سریح بله؟ مطلوب در قرآن اومده طلا یعنی بعد از اون اومدن لیلیین نکم یعنی بعد از من 20 ت مستقیما جای زیادی اومده. پس مطلوب یعنی اونی که پشت سرش چی میشود؟ بله تلاها خب ببینم در تمرینات در چی؟ ما ازر را اللا الا سوف صانع کجا آورده؟ اما او خامسوم قسمم. قسمم يا عمر بخشي امثله حساب. ما يا شو آورده ما بله بله خودش درس درس در گروه سوم امثله را آورده است. ببین دقت بفرمایید اذا کان الفعل مبنيا للمجهول زمانی که فعل مجهول باشد مانند ان يعقب مانند چی؟ او منفی یعنی یا فعل چه باشد ملا سهیل فعل چه باشد مانند ما ابررا الله یسد قه الصانع چه قدر zarar دارد که صانع راست نگوید راست نگوید مثبت است یا منفی پس الان مثال منفی رو خودش آورده مجهول رو هم خودش آورده اذا کان الفعل و مبنی للمجهول زمانی که فعل چه باشد فعل مبنی بر چه باشد بر مجهول یعنی فعل مجهول باشد یا فعل منفی باشد دیگه نمیتونیم مباشرتا از اون چی درست کنیم بله مثلا ما عدل القاضی ما عدل اگر اینجا فعل ما منفی می بود فعل ما چی می بود دیگه نمیتونستیم بگوییم ما عدل با به چه شکل درستش میکردیم بعد می آوردیم میگفتیم ما اشد الله يعدل الله اه... يعدل القاسي ببینید اگر همین شما قبلا مثالی خواستید اگر ما میخوایم فعل رو منفی کنیم فعل رو چکار کنیم اون موقع مباشرتن نمیتوانیم که ازش چه درست کنیم؟ فعل تعجب درست کنیم منفی معننده چی؟ مثلا ما اعدل القاضی این دیگه مثبته. سحرفیه، تامه، معلومه، متصرفه وزنش بر وزن افعال نیست قابل تفاوت هست خاطرین مباشراتا ازش سیغه تعجب و درس درست کرده ولی اگر ما بیایم همین فعل رو منفی کنیم اون موقع چطور درستش میکنیم سیغه تعجبش رو؟ میگویم ما اشده الله یع دلال قاضی چقدر سخت است یا ما ابره اللا یع دلال قاضی یا ما اقبحه اللا یع دلال چقدر زشت است که قاضی عدل نکند الان فهمیدی مولاسو بله خب الان دیگه فهمیدی منفی رو ولی خودش دو سیغه آورده ما اقبحه ایو عقب میگه زمانی که فعل فعلی که ازش سیغه تعجب رو درست میکنی در قاید 45 میگوید اگر فعل مجهول بود مانند ایو یا منفی بود مانند الله دق اون موقع تعجب چطور درست میشد؟ به وصیل ما اشده یا اشدد بیهی یا بقیه یک ذکر شدن که در این حالت دقیق بفرمایید که در این حالت مصدر سریح دیگه نمیشه آورد چرا مصدر سریح نمیشه آورد؟ خود چون خودش داره میگه اگر فعل منفی بود اگر فعل چی بود؟ مجهول, مجهول بود دیگه مصدر که نمیشه مجهول یا منفی آه؟ لذا پس در این حالت بعد از ما اشده چی می آوریم؟ مصدر مؤول می آوریم قاعده چلوشی لا يتعجب من الفعل الجامد مطلقا از فعل جامد مطلقا نمی شود چی درست کرد؟ فعل تعجب درست کرد مثلا از عصا مثلا شما میخواد از عصاب سروران من تعجب درست کنید میگید ما اشد دعصا نمیشه ولا من الفعل الذي لا يتفاوت لا يتفاوت معناه وهمتني از فيلي كي معنيش متفاوت نيست نميشه مطلقا صيغه تعجب رو درس كرد من دي حيوت درس ما وتما دوستي آري نميشه درس بله نميشه مگر مگر در بعضي حالات كه خوب اونو انشاءالله خواهید خوند پس تا اینجای کار ما درس دو فیل دو فیله تعجب دو فیله چی؟ کسیغه مازی بودن ولی یکیشون شبه امر بود رو مفصل خواندیم و نمونه ای رو برای سروران ترکیب کردیم الله درس بعدیمون تعریص فیل للفایل